کنار آب و پای بید و طبع شعر و یاری خوش معاشر دلبری شیرین و ساقی گل ازاری خوش علا ای دولتی تالع که قدر وقت میدانی گوارا بادت این اشرت که داری روزگاری خوش هران کس که در خاطر ز اشک دلبری باریست سفندی گو براتشنه که دارد کارو باری خوش عروس تبرازی ورز فکر بکر بیوندم بود که از دست ایامم به دست افتد نگاری خوش شب صحبت قنیمت دان و داد خوشدری بستان که محتابی دل افروز است و ترف لال زاری خوش می در کاسه چشم ساغی را بنامی زد که مستی می کند با عقل و می بخشد خماری خوش به قفلت عمر شد حافظ بیا با ما به می که شنگولان خوش باشد بیا موزند کاری خوش